تا اینجا درباره شرایط لازم برای تمرین هر گونه هنری سخن گفتیم. اکنون درباره صفاتی که برای توانایی عشق ورزیدن از اهمیت خاصی برخوردارند بحث خواهیم کرد. بنابر آنچه در ماهیت عشق گفتیم، اساسی ترین شرط اصلی رسیدن به عشق این است که بر خودفریفتگی فائق در در جهتبینی خودفریفتگی انسان فقط آنچه را که در خود دارد واقعی می داند. در حالی که پدیده های دنیای خارج فی نفس واقعیت ندارند بلکه فقط از دیدگاه سودمندی یا خطری که برای فرد خودفریفته دارند ارزیابی می شوند قطب مخالف خودفریفتگی است واقعبی واقعبینی یعنی دیدن افراد و اشیا به طور اینی و همانطور طور که هستند و جدا ساختن تصویر عینی از تصویری که آمیخته با ها و ترس‌های فرد است. کلیه بیماران روانی واقع بینی را به شدت از دست دادند. تنها واقعیتی که در نظر آدم دیوانه وجود دارد دنیای درونی یعنی تمایلات و ترس‌های خود او است. او دنیای خارج را سراسر سمبول دنیای درون خیش می‌داند و آن را آفریده خود می‌پندارد همه ما وقتی خواب می‌بینیم همین حالت را داریم ما در رویاهای خیش حوادثی به وجود می‌آوریم و داستان‌هایی میآفرینیم که همگی بیانی از تمایلات و ترس‌های ما هستند گرچه گاه نیز بینش و داوری ما را بیان می‌کنند و هنگامی که در خوابیم یقین داریم که محتوای رویاهای ما به اندازه آنچه در عالم بیداری مشاهده می‌کنیم واقعی است شخص دیوانه یا کسی که خواب می‌بیند به هیچ وجه نمی‌تواند از دنیای خارج از خودش تصوری عینی داشته باشد ولی همه ما کم یا بیش دیوانه ایم یا در خوابیم همه ما تصویری غیر عینی از دنیا داریم تصویری که در نتیجه خودفریفتگی ما آشفته و مخدوش شده است آیا نیازی به آوردن مثال هست؟ همه می توانیم به سهولت با نگریستن به خیش به اطرافیان و خواندن روزنامه نمونه های فراوانی از آن پیدا کنیم شدت و ضعف آنها بستگی به میزان تحریفی دارد که خودفریفتگی در واقعیت به وجود می آورد مثلاً زنی به دکتر تلفن می کند و می گوید می خواهم همین امروز عصر شما را ببینم. دکتر جواب می دهد که امروز عصر گرفتارم ولی می توانم فردا شما را بپذیرم. زن جواب می دهد خانه ما فقط پنج دقیقه با مطب فاصله دارد. او درک نمی کند که توضیح او مبتنی بر نزدیک بودنش با مطب دکتر نمی تواند برای دکتر وقت آزاد خلق کند. این زن، در این مورد از روی خودفریفتگی خود قضاوت میکند. چگونه وقت خودش تلف نمی‌شود پس دکتر هم وقتش تلف نمی‌شود تنها چیزی که برای او واقعیت دارد خود اوست خفیفتر از این یا احتمالاً با وضوحی کمتر فهمیها و آشفتگی‌هایی است که در روابط بین اشخاص معمول و متداول است آیا پدر و مادرهایی را نمیشناسید که به جای اینکه احساس کودک را برای خودش و همانطور که هست درک کنند یا حتی به آن توجه داشته باشند عکسل عملهای طفل را به حساب فرمان برداری او علاقش به شاد کردن و سرف را ساختن والدینو غیره میگذارند؟ آیا بسیار نیستند شوهرانی که خیال میکنند زنانشان سلت هستند؟ در حالی که وابستگی خود آنها به مادر آنها را وادار می کند که هر نوع تقاضای همسرانشان را به منزله تهدید آزادی خیش تلقی کنند. آیا زنهای بیشماری را نمیشناسید که شوهران خود را بی و احمق می زیرا این شوهران نتوانستند همانند قهرمانان افسانه یا شهسواران نامدار و درخشانی باشند که زنانشان از کودکی در خیال خود می فقدان واقع بینی به خصوص در رابطه با ملل دیگر به صورت زشتی خود را نمایان می سازد. در ظرف یک روز ملتی را با قاطعیت تمام پلید و حیولا صفت قلمداد می‌کنیم در حالی که گمان می‌کنیم ملت خودمان تجسم نیکی و نجابت است برای سنجش اعمال دشمن از یک معیار و برای سنجش اعمال خود از میاری دیگر استفاده می‌کنیم حتی اعمال خوب دشمن را نشانی از خوی خاص اهریمنی او انگاریم. و تصور میکنیم که او میخواهد با این کار دنیا و ما را فریب دهد در حالی که اعمال بد خود را از آنجا که ظاهرا به آرمانهای شریفی خدمت میکنند ضروری و موجه میدانیم. در حقیقت ما از مطالعه مناسبات ملتها و نیز مناسبات بین افراد به این نتیجه میرسیم که واقع بینی استثنا و تحریف ناشی از خودفریفتگی قاعده است استعداد تفکر واقع بینانه را خرد مینامند. خرد خود در متنی عاطفی قرار دارد که فروتنی نام دارد. فقط وقتی میتوانیم واقع بین باشیم و از خرد سود ببریم که با فروتنی به جهان بنگریم و از رویای کودکانه همه چیزدانی و بر همه کاری توانا بودن رها شده باشیم. با توجه به آنچه تا کنون درباره تمرین هنر عشق ورزیدن گفته ایم، معنای گفته پیشین چونین می شود چون وجود عشق واقعی وابسته به فقدان نسبی خودفریبی است پس عشق به تکامل فروتنی و واقعبینی و خرد نیاز دارد باید زندگی خود را سراسر وقف این هدف کرد فروتنی و واقعبینی نیز مانند عشق جدایی ناپذیر و غیر قابل تقسیمند اگر من نتوانم نسبت به بیگانگان واقعی بین باشم، ممکن نیست بتوانم نسبت به خانواده خود حقیقتا واقعی بین باشم و بلعکس. اگر در صدد این هستیم که هنر عشق ورزیدن را بیاموزیم، باید تلاش کنیم تا در هر موقعیتی واقعی بین باشیم و نسبت به موقعیتهایی که واقعی بین نیستیم، حساسیت پیدا کنیم. باید بکوشیم تا بین تصویری که خودمان از یک فرد و رفتار و کردار و او داریم که این تصویر به تب به سبب خودفریفتگی ما مخدوش و تحریف شده است و واقعیت طرف مورد نظر همانطور که وجود دارد، صرف نظر از علایق، نیازها و ترسهای خود تمایز قائل شویم. کس به قدرت واقع بینی و خردمندی در واقع به معنی این است که نیمی از راه هنر عشق ورزیدن را پیموده ایم اما این واقع بینی و خرد باید همگانی باشد یعنی به همه کسانی که با ما در تماسند تعمیم یابد اگر کسی بخواهد تنها در مناسبات خود با مشوق واقع بین باشد و تصور کند که در مناسبات خود با بقیه مردم دنیا از آن صرف نظر کند به زودی در مییابد که در هر دو جبه شکست خورده است توانای عشق ورزیدن بستگی به این دارد که شخص بتواند از حالت خودفریفتگی به در و پیوندهای غیر طبیعی خود را با مادر و تایفه بگسلد و نیز بستگی به این دارد که تا چه حد استعداد رشد داشته باشیم و تا چه حد روش ثمربخشی در مناسبات خود با دنیا و شخص خودمان در پیش گیریم این جریان رهایی یافتن تولد دوباره و بیدار شدن نیاز به یک شرط ضروری دیگر دارد ایمان تمرین هنر عشق ورزیدن به تمرین ایمان نیاز دارد ایمان چیست آیا ایمان لزوما مسئله اعتقاد به خدا یا دین است؟ آیا ایمان ضرورتا از خرد و تفکر منطقی جدا و با آن در تضاد است؟ حتی برای شروع درک مسئله لازم است تفاوت بین ایمان منطقی و ایمان غیرمنطقی را تشخیص دهیم. منظور من از ایمان غیرمنطقی اعتقادی به یک شخص یا یک عقیده است که اساس آن تسلیم به مرجعی غیرمنطقی است. برعکس ایمان منطقی اعتقادی است که ریشه آن در تفکر یا احساس خود فرد است. مهمترین جنبه ایمان منطقی این نیست که به چیز خاصی عقیده داشته باشیم. بلکه عبارت است از خصلت یقین و قاطعیت عقیده ما. ایمان قبل از اینکه اعتقادی خاص و مشخص باشد، خصیصه ای است که کل شخصیت را در بر میگیرد و در آن نفوذ میکند. ریشه ایمان منطقی در فعالیت بارور اقلانی و عاطفی قرار دارد. در تفکر منطقی که تصور میشود ایمان در آن جایی ندارد، ایمان منطقی جزء مهمی را تشکیل میدهد. مثلا چگونه یک دانشمند به کشف جدیدی میرسد آیا او بیان که تصویری از آنچه در پی یافتن آن است داشته باشد پی در پی آزمایش میکند و اطلاعات به دست آمده را روی هم می ریزد؟ در واقع با این شیوه در هیچ زمینه ای کشف مهمی حاصل نشده است کسانی هم که فقط به دنبال خیالات و پندارهای خود میروند هیچگاه به نتایج مهمی نرسیدند روند تفکر خلاق در کلیه زمینه‌های فعالیت‌های بشری غالبا با چیزی آغاز می‌شود که می‌توان آن را تصویر منطقی نامید که خود نتیجه مطالعه قبلی اندیشه‌های عمیق و مشاهدات بسیار است تنها زمانی می‌توان گفت که دانشمند به یک فرضیه تجربی و قابل دستیافته است که قبلا اطلاعات کافی را جمع‌آوری کرده و یا روی یک فرمول ریاضی چندان کار کرده باشد که تصویر بدوی او قابل توجیه تر گردد تحلیل دقیق فرضیه به منظور تشخیص محتوا و معنای آن و گردآوری اطلاعات که آن را تایید می‌کنند منجر به پیدایش فرضیه قابل قبولتر و احتمالا تحلیل و گنجاندن آن در یک نظریه وسیعتر می‌گردد تاریخ علم انباشته است از مثالهایی درباره ایمان به خرد و الهام برای یافتن حقیقت کوپرنیک کپلر، گالیله و نیوتن همه مشهون از ایمان به خود بودند. درست به همین دلیل بود که و برونو را در آتش سوزاندند و اسپینوزا را تکفیر کردند. از زمان آغاز تصویر منطقی تا هنگام طرح و تنظیم یک نظریه، ایمان عنصر اساسی است. ایمان به یک پیشبینی که منطق آن را به عنوان یک هدف قابل تعقیب معتبر میشمارد. ایمان به فرضیه به منزله قضیه‌ای که سرانجام قابل توضیح و اثبات خواهد بود و ایمان به نظریه نهایی حداقل تا زمانی که اعتبار آن را توافق عمومی تایید کند این ایمان از تجربه خود شخص از اعتماد به نیروی فکری خود و از مشاهده و قضاوت او سرچشمه می‌گیرد در حالی که ایمان غیر منطقی حقیقت پنداشتن چیزیست چیزی است فقط به علت اینکه قدرتی آن را توصیه کرده است یا اکثریت قبولش دارند. ایمان منطقی از اعتقادی مستقل سرچشمه میگیرد که بر پایه تفکر و مشاهده سمر بخش استوار است ولو آنکه مخالف با عقیده اکثریت باشد. فکر و داوری، تنها قلم روهایی نیستند که ایمان منطقی در آنها تجلی می یابد. در قلمرو روابط انسان ها نیز ایمان از جمله شرایط ضروری هر دوستی یا عشق مهمی است. ایمان داشتن به دیگری یعنی اعتماد به پایداری و تغییر ناپذیری نگرش های اساسی وی و به بنیاد شخصیت و عشق او. منظوری نیست که شخص عقاید خود را تغییر نمیدهد. بلکه مقصود آن است که انگیزه های اساسی شخصیت او به جای خود باقی میمانند، مثلا احترام او به زندگی و مقام انسان جزئی از هستی اوست و دست خوش تغییر نمیشود. به همین معنی ما به خودمان نیز ایمان داریم. ما از وجود یک خود یا قانونی در شخصیت خیش آگاهیم که تغییر ناپذیر است. و علا رغم شرایط مختلف و بدون توجه به تغییرات خاصی که در عقاید و احساساتمان من پدیدار می شود، در سراسر زندگی بدون تغییر باقی می ماند. همین کانون است که واقعیت دنیای من را تشکیل می دهد و پایه اعتقاد به هویت خود ما محسوب می شود. اگر ما به پایداری خیشتن در هستی خود ایمان نداشته باشیم، احساس هویت ما مورد تهدید واقع می شود و به دیگران وابسته میگردیم و تصویب و تایید آنها بنیاد احساس هویت ما می شود. تنها آن کس که به خود ایمان دارد میتواند نسبت به دیگران ایمان داشته باشد زیرا فقط اوست که میتواند مطمئن باشد که در آینده نیز چون امروز خواهد بود و در نتیجه احساس و عملش همان گونه خواهد بود که امروز انتظارش را دارد. ایمان به خود شرط لازم برای قول دادن است. زیرا به گفته نیچه مشخصه انسان در ظرفیت قول دادن اوست. ایمان یکی از شرایط هستی بشر است. نکته مهم در مورد عشق ایمان به عشق خیش و به توانایی آن برای ایجاد عشق در دیگران و قابل اعتماد و اتکا بودن آن است. ایمانی که ما به استعدادهای بالقوه اشخاص داریم نیز یکی از معانی ایمان به دیگران است. ابتدایی ترین شکل آن ایمانی است که مادر به نوزاد خیش دارد. ایمان به اینکه او زنده خواهد ماند. رشد خواهد کرد، راه خواهد رفت و حرف خواهد زد اما رشد کودک از این لحاظ با آنچنان نظم قاعدهی صورت می گیرد که دیگر به نظر نمی رسد آرزوی آنها نیاز به ایمان داشته باشد ولی این امر در مورد استعدادهای بلقوهی که ممکن است تحقق نیابند تفاوت پیدا می کند استعدادهای بالقوه کودک برای عشق ورزیدن، خوشبخت بودن و به کار بردن خرد یا استعدادهای خاصی مانند ذوق هنری اینها دانه‌ای است که اگر شرایط صحیح برای نمو آنها فراهم شود رشد میکنند و آشکار میشوند. و اگر این شرایط وجود نداشته باشند همگی خفه میشوند. یکی از مهمترین این شرایط این است که شخصی که در زندگی کودک اهمیت دارد خود به این استعدادها ایمان داشته باشد وجود همین ایمان است که تفاوت بین آموزش و پرورش و شیوه های مندرآوردی برای تربیت کودک را روشن میسازد تربیت یعنی کمک کردن به طفل برای تحقق بخشیدن به استعدادهای بالقوه وی, وی. قطب مخالف آموزش و پرورش دخل و تصرف در رشد کودک با شیوه‌های مندرآوردی است دخل و تصرف به این معنا که کودک فقط در صورتی درست بار می‌آید که بزرگسالان را مطلوب می‌دانند در او ایجاد کنند و آنچه را به نظرشان نامطلوب می‌رسد در او سرکوب سازند انسان ماشینی نیازی به ایمان ندارد زیرا در او زندگی هم یافت نمی‌شود عالیترین مرحله ای ایمان به دیگران، ایمان به بشریت است. در دنیای غرب این ایمان در قالب مذهبی در ادیان یهودی مسیحی تجلی یافته است. و در فرهنگ غیر مذهبی، ترین تجلیگاه آن در اندیشه های سیاسی و اجتماعی بشر دوستانه 150 سال اخیر می باشد. این ایمان، مانند ایمان به کودک مبتنی است بر این عقیده که استعدادهای درونی بشر چنانند که اگر شرایط مناسب برایشان فراهم شود میتوانند نظام اجتماعی خاصی به وجود آورند که مبتنی بر اصول برابری، ادالت و عشق باشد. بشر هنوز به ساختن چنین نظامی نایل نشده است. اما اعتقاد به اینکه آرزوی دیرینه‌اش به تحقق خواهد پیوست به ایمان نیاز دارد اما مانند همه ایمان‌های منطقی این ایمان نیز یک آرزوی خیالی نیست بلکه بر مجموعه دستاوردهای گذشته بشریت و بر تجربه درونی هر فرد و بر تجربه‌ای که شخص از خود و عشق خیش دارد استوار است ایمان غیرمنطقی از تسلیم محض به قدرتی که به غایت نیرومند و قادر و مطلق جلوه می کند و از نفی کامل نیرو و قدرت خود انسان سرچشمه می گیرد در صورتی که ایمان منطقی درست عکس این است هنگامی که عقیده ای نتیجه مشاهدات و تفکرات خودمان باشد به آن ایمان پیدا می کنیم. ما به استعدادهای بلقوه دیگران و خود ایمان پیدا می کنیم. زیرا و فقط تا به آن درجه که رشد استعدادهای بالقوه خود را تجربه کردیم واقعیت این رشد را در خود دیدیم و قدرت خرد و عشق خود را آزمودیم اساس ایمان منطقی خصلت باراوری است زندگی با ایمان یعنی زندگی ثمر بخش و بارآور بدین ترتیب، ایمان به قدرت به معنی تسلط و سلطجوی و استفاده از قدرت نقطه مقابل ایمان است. ایمان به قدرت موجود برابر است با بی ایمانی نسبت به رشد استعدادهای بلقوهی که هنوز تحقق نیافتند. چون این ایمانی ما را بران وامی دارد که آینده را صرفاً بر مبنای آنچه فعلاً آشکار و معلوم است پیشبینی کنیم. اما این محاسبه بسیار نادرستی است و به علت نادیده گرفتن استعدادهای بالقوه و, و رشد انسان اساساً غیر است. به قدرت نمیتوان ایمان منطقی داشت. فقط ممکن است در برابر آن تسلیم شد و یا در صورت صاحب قدرت بودن آرزوی تداوم آن را داشت. با وجودی که در نظر بسیاری از مردم قدرت از جمله واقعیترین ترین چیزهاست. تاریخ بشر بی سباتی و تزلزل ناپذیر آن را به وضوح نشان داده است. درست به همین دلیل که ایمان و قدرت متقابلا مانع منافع یکدیگرند، کلیه ادیان و نظامهای سیاسی که در بد و امر بر اساس ایمان منطقی ایجاد شده اند، پس از تکیه بر قدرت یا همپیمان شدن با آن سرانجام به فساد می‌گرایند و نیروی خود را از دست می‌دهند. ایمان به شهامت، جرأت و تن به خطر دادن نیاز دارد، و حتی در این راه باید آماده بود تا درد و یعص را هم پذیرفت. کسی که سلامت و ایمنی را از نخستین شرایط زندگی می داند، نمی تواند ایمان داشته باشد. کسی که همواره خود را پشت یک سپر دفاعی پنهان می کند و ایمنی را در وسیله و فاصله می جوید، در واقع از خود یک زندانی ساخته است. دوست داشتن و محبوب بودن نیاز به شهامت دارد شهامت برای داوری درباره ارزشهایی که قایت آرزوی ماست و شهامت برای پیشتاختن و به خطر انداختن همه چیز به خاطر این ارزشها این شهامت با شهامتی که آن لافزن بزرگیانی موسولینی در شعار با خطر زندگی کردن از آن دم میزند بسیار متفاوت است شهامت ادعای او شهامت نهیلیستی بود این نو شهامت از یک نگرش مخرب نسبت به زندگی و از تمایلی که قادر به دوست داشتن زندگی نیست و در نتیجه آن را از خود میراند سرچشمه می‌گیرد شهامت ناامیدی ضد شهامت عشق است درست همانطور كه که ایمان به قدرت متضاد با ایمان به زندگی است آیا ایمان و شهامت نیز احتیاج به تمرین دارند؟ در واقع ایمان را میتوان در هر لحظه تمرین کرد. ایمان لازم است تا بتوانیم کودکی را بزرگ کنیم. ایمان لازم است تا به خواب رویم. ایمان لازم است تا بتوانیم به کاری اقدام کنیم. اما همه ما به این نوع ایمان عادت داریم. آنها که فاقد این ایمان هستند درباره کودک یا بیخوابی یا از عدم توانایی برای انجام دادن هر نوع کار سمربخشی همواره در استرابی شدید به سر میبرند. چون این افرادی دوچار سوء زن هستند از نزدیک شدن به دیگران با دارند، مالی خولیایی و خیالی هستند یا هرگز نمی توانند نقشه های دراز مدت برای خود طرح کنند. اصرار در قضاوت خود نسبت به یک شخص ولو آنکه عقاید عمومی یا حقایق پیشبینی نشده ای آن را بی اعتبار میسازد و نیز پافشاری در اعتقاداتی که مردم پسند نیستند همه اینها به ایمان و شهامت نیاز دارد برای اینکه بتوانیم مشکلات، شکستها و غمهای زندگی را کیفرهای غیر تلقی نکنیم که فقط بر سر ما آمدهاند و برای آنکه بتوانیم آنها را جزء مبارزه زندگی تلقی کنیم که غلبه بر آنها ما را نیرومندتر می‌سازد، باید ایمان و شهامت داشت. تمرین ایمان و شهامت با جزئیات کوچک زندگی روزانه شروع می‌شود. اولین قدم این است که ببینیم در کجا و در چه وقت ایمانمان را از دست داده ایم و دلیل تراشی های خود را برای توجیه از دست رفتن ایمان خیش مورد بررسی قرار دهیم تشخیص بدهیم در چه مواردی ترسو بوده ایم و چگونه با دلیل تراشی ترس خود را توجیه کرده ایم. باید درک کنیم لغزش ایمان ضعف به دنبال دارد و ضعف وقتی که زیاد شد بی ایمانی جدیدی تولید می‌کند و به همین ترتیب دور باطل اجتناب ناپذیری به وجود می‌آورد علاوه بر اینها در خواهیم یافت که اگر چه شخص آگاهانه از محبوب نبودن می‌ترسد اما در واقع به طور ناخودآگاه از دوست داشتن بیم دارد دوست داشتن بدین معنی است که انسان خود را بدون هیچ ضمانتی متعهد کند خود را به طور کامل ایثار کند فقط به این امید که عشقش ممکن است در معشوق ایجاد عشق کند عشق عمل ایمان است و آنکه ایمانش کم است از عشق نیز بهره چندانی نخواهد داشت آیا می توان بیشتر از این راجب تمرین ایمان صحبت کرد شاید کس دیگری بتواند شاید اگر من هم شاعر یا واعظ بودم چنین کاری می کردم اما چون نه شاعرم و نه حتی کوشش برای اینکه از این بیشتر درباره تمرین ایمان صحبت کنم برایم مقدور نیست. ولی مطمئنم آنان که واقعا به موضوع علاقه دارند میتوانند همانطور که کودک راه رفتن را یاد میگیرد، ایمان کسب کنند. شرط دیگری که برای تمرین هنر عشق ورزیدن ضروری است و تا به حال در مورد آن فقط به ابهام صحبت کرده ایم و اکنون باید آن را به وضوح بیان کنیم، فعالیت است که پایه و اساس تمرین عشق به شمار می قبلا قبلا گفتیم که منظور از فعالیت انجام دادن چیزی نیست، بلکه منظور فعالیت باطنی و استفاده سمر بخش از نیروهای خیشتن است، عشق نوعی فعالیت است اگر من عاشق باشم فکر من دائما و به طور فعال متوجه معشوق است اما نه فقط معشوق یا معشوقه زیرا اگر تنبل باشم یا اگر در یک حالت آگاهی و هوشیاری دائم نباشم مسلما نمیتوانم ارتباط فعالانه با معشوق داشته باشم خواب تنها موردی است که در آن توان از فعالیت دست کشید و بیداری تنها حالتی است که در آن نباید جایی برای تنبلی وجود داشته باشد امروزه بسیاری از مردم وضع متناقضی دارند آنها هنگام بیداری نیمه خوابند و هنگام خواب یا هنگامی که می‌خواهند بخوابند نیمه بیدارند بیداری کامل شرط لازم برای عدم ملالت یا ملالاور بودن است و در واقع کسل نشدن و کسالت آور نبودن از شرایط امده عشق ورزیدن است. یکی از شرایط ضروری تمرین هنر عشق ورزیدن، فعال بودن در فکر و احساس با چشمها و گوشها در سراسر روز و اجتناب از تنبلی درونی است. خواهین تنبلی به شکل فعل پذیر باشد یا به صورت اطلاف وقت؟ اندیشه تجربه زندگی به این طریق که بگویی میتوان در دنیای عشق خلاق بود و در سایر زمینه ها بی سمر، توهمی بیش نیست در خلاقیت هرگز چون این تقسیم کاری وجود ندارد قابلیت دوست داشتن احتیاج به جدیت، بیداری و شور زندگی دارد و همه اینها نتیجه داشتن نگرشی فعال و سمر بخش در بسیاری از شعون دیگر زندگی است اگر کسی در شعون دیگر خلاق نباشد، در عشق نیز خلاق نیست. بحث درباره هنر عشق ورزیدن را نمیتوان به اکتساب و تکامل شخصی خصیصه ها و نگرش هایی که در این فصل دادیم محدود کرد. هنر عشق ورزیدن با شرایط اجتماعی رابطه ناگسستنی دارد. اگر معنی دوست داشتن این است که نسبت به همه کس رفتاری دوستانه داشته باشیم، اگر عشق یکی از خصایص شخصیت انسان است پس لزوما نه تنها باید در روابط ما با خانواده و دوستان بلکه باید در رابطه با تمام کسانی که در کار و کسب و شغل با ما تماس دارند نیز وجود داشته باشد بین عشق به خودی و عشق به بیگانگان نمی‌تواند تقسیم کار وجود داشته باشد برعکس شرط وجود عشق به خودی وجود عشق به دیگران است اگر این بینش را جدی تلقی کنیم، در حقیقت باید در مناسبات عادی و مرسوم اجتماعی خود تغییری مؤثر و شدید به وجود بیاوریم. گرچه از عشق نسبت به همسایگان به عنوان یک آرمان دینی همیشه با لاف و گذاف فراوان صحبت اند، در واقع روابط ما را در بهترین حالت اصل انصاف تعیین می کند. انصاف به معنی عدم استفاده از فریب و تزویر در مبادله کالاها و خدمات و نیز در مبادله احساسات است. من همان اندازه به شما می دهم که شما به من می دهید. این است شعار متداول اخلاقی جامعه سرمایداری. چه در مورد کالاهای مادی و چه در مورد عشق. حتی می توان گفت که تکامل اخلاقیات انصاف خدمت خاص اخلاقی جامعه سرمایهداری به جامعه بشریت است دلیل این حقیقت را می توان در ماهیت جامعه سرمایهداری یافت در جوامع قبل از سرمایهداری مبادله کالاها را اعمال زور مستقیم، سنتها و یا پیوندهای عشق و دوستی بین افراد تعیین می کرد اما در سرمایهداری عامل تعیین کننده در همه شعون مبادله در بازار است. چه سر و کارمان با بازار کالا باشد، چه بازار کار و یا بازار خدمات هر فروشندهای کالای خود را با کالای خریدار و به موجب شرایط بازار و بدون اعمال زور یا تقلب مبادله می کند. اخلاقیات انصاف با اخلاقیات قانون طلایی مشتبه می شود. و با آن در هم می‌آمیزد شعار با دیگران همان گونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند را میتوان چنین تعبیر کرد در معاملات با دیگران منصف باش اما این در اصل از این بیانه به مراتب مشهورتر که در کتاب مقدس آمده است سرچشمه می گیرد همسایت را مانند خودت دوست بدار در حقیقت هنجار عشق برادرانه در دین یهودی مسیحی کاملاً با اخلاقیات انصاف تفاوت دارد معنی اینکه همسایت را دوست بدار یعنی برای او احساس مسئولیت کن و با او یکی باش در حالی که معنی اخلاقیات انصاف این است که احساس مسئولیت و یگانگی نکن بلکه جدا و دور بمان به حقوق همسایت احترام بگذار ولی به او عشق نورز تصادفی نیست که قانون طلایی امروز محبوب ترین شعار دینی شده است زیرا آن را میتوان به اقتصاد اخلاقیات انصاف تعبیر کرد این اکنون تنها شعار دینی است که همه آن را میفهمند و مایلند طبق آن عمل کنند اما تمرین عشق باید با تشخیص و شناخت تفاوت انصاف و عشق شروع شود در اینجا سؤال مهم دیگری مطرح میشود. اگر همه سازمان اجتماعی و اقتصادی ما بر این پای مبتنی است که هرکس سود خود را جستجو می کند و اگر این سازمان را اصل خودخواهی که آن را فقط اصل اخلاقی انصاف تحویل کرده است اداره می کند انسان چگونه میتواند در قالب اجتماعی کنونی عمل کند و در عین حال عشق بورزد آیا عشق ورزیدن بدان معنی نیست که انسان به همه علایق دنیاوی پشت کند و شریک زندگی فقیرترین مردم شود؟ این سوال را راهبان مسیحی و اشخاصی مانند تولستوی، آلبرت شوائدزر و سیمون ویل مطرح کرده و جوابی رادیکال به آن دادند کسان دیگری هم هستند که معتقدند بین عشق و زندگی دنیاوی غیردینی در جامعه ما نوعی سازگاری و تضاد اساسی وجود دارد. آنان به این نتیجه می رسند که امروزه صحبت از عشق به معنی شریک شدن در مکرو فریب عمومی است و ادعا می کنند که تنها یک ایسارگر یا یک آدم دیوانه می تواند در دنیای امروز عشق بورزد بنابراین همه ی حرف‌هایی که درباره عشق زده می شود چیزی جز معزهی پوچ نیست این طرز فکر محترمانه متعلق به نیست که سعی می کنند نظریات خود را منطقی جلوه دهند مردم عادی نیز تلویحاً همین عقیده را دارند و بسیار شنیده این که می‌گویند من دوست دارم مسیحی خوبی باشم ولی اگر واقعا بخواهم چونین باشم باید از گرسنگی بمیرم این نوع رادیکالیسم منجر به نهیلیسم اخلاقی می شود، هم متفکران رادیکال و هم مردم عادی در حکم آدم های ماشینی هستند که نمی توانند دوست بدارند، و تنها تفاوت بین آنها این است که گروه دوم از آن آگاه نیست، در حالی که گروه نخست آن را می شناسد و ضرورت تاریخی آن را درک می کند، اعتقاد خود من بر این است که نظریه ناسازگاری مطلق عشق با زندگی عادی فقط به معنای انتظائی آن صحیح است اصل اساسی جامعه سرمایداری با اصل اساسی عشق ناسازگار و با آن در تزاد است اما اگر به طور مشخص به جامعه امروز بنگریم می بینیم که پدیدهی بغرنج و پیچیده است که یک دست نیست مثلا فروشندهی که کالای بی میفروشد می فروشد، نمی بدون دروغ وظیفه اقتصادی خود را انجام دهد اما یک کارگر ماهر یک داروساز یا یک طبیب می تواند. به همین ترتیب زارع، کارگر، معلم و دارندگان بسیاری از شغلهای دیگر می توانند به تمرین عشق بپردازند بیان که خلالی در وظیفه اقتصادی آنها به وجود آید حتی اگر به نظر شخص اصل سرمایهداری با اصل عشق در تضاد باشد باید بپذیریم که سرمایهداری فی نفس ساختمانی پیچیده است که پیوسته در حال تغییر است و امکان آزادی عمل و عدم همرنگی با جماعت به مقدار زیادی در آن وجود دارد با وجود این من در این فکر نیستم که تلویهن بگویم نظام اجتماعی موجود تا ابد پابرجای خواهد ماند و در آن آرمان عشق برادرانه تحقق خواهد یافت. در شرایط کنونی کسانی که توانایی مهر ورزیدن دارند مسلما آدمهای استثنایی هستند. در جامعه کنونی غرب عشق ضرورتا پدیده ای است که در هاشیه ی زندگی قرار گرفته است. نه به سبب اینکه گرفتاریها و کارهای فراوان فرصتی برای پیدایش نگرش عاشقان باقی نمیگذارد بلکه روحیه اجتماعی که اساس آن بر تولید و حرص به تولید بیشتر استوار است، آنچنان است که در آن تنها کسانی که همرنگ نمی شوند می توانند با موفقیت در برابر آن از خود دفاع کنند. کسانی که جدا به موضوع عشق به عنوان تنها جواب منطقی به مسئله هستی انسان مینگرند، سرانجام به این نتیجه میرسند که عشق به منزله یک پدیده اجتماعی و نه در صد درصد فردی درهاشیه فقط در صورتی امکان تحقق دارد که در ساختمان اجتماع ما تغییرات اساسی و مهم صورت پذیرد. در این کتاب کوچک فقط میتوانیم به جهت این تغییرات اشاره کنیم. اجتماع ما توسط یک بروکراسی متشکل از مدیران و سیاستمداران مداران اداره میشود. مردم با تبلیغ وسیع و عمومی برانگیخته میشوند. هدف آنها تولید هرچه بیشتر و مصرف هرچه بیشتر برای تولید هرچه بیشتر و مصرف هرچه بیشتر است. کلیه فعالیت ها تابع هدف های اقتصادی است. وسیله تبدیل به هدف شده و انسان به آدم ماشینی تغییر ماهیت داده است. تغذیه خوب لباس خوب، اما بدون علاقه و توجه قایی به آنچه که اختصاصاً صفت و کنش انسان است. اگر اصل بر این است که انسان قادر به عشق ورزیدن است، باید او را در مقام عالی خیش جای داد. ماشین اقتصاد را باید در خدمت انسان قرار داد، نه بالعکس باید به انسانها امکان داد تا در کار و تجربه یکدیگر دیگر سهیم شوند، نه در منافع. آن هم منافعی که در بهترین شرایط فقط برای گروهی معدود حاصل می شود جامعه باید طوری سازمان یابد که طبیعت اجتماعی و عاشقانه انسان نه تنها از وجود اجتماعی او جدا نگردد بلکه با آن یگانه شود اگر همانطور که سعی کردم در این کتاب نشان بدهم حقیقت دارد که عشق تنها پاسخ رضایت بخش و عاقلانه به مسئله هستی انسان است پس هر جامعه ای که به طور نسبی از تکامل عشق جلوگیری کند به در دراز مدت به علت تزاد درونی خیش با ضروریات اساسی طبیعت انسان نابود خواهد شد. در حقیقت صحبت از عشق معزه نیست آن هم به این دلیل ساده که بحثی است درباره احتیاج غایی و واقعی هر موجود بشری اگر چهره این نیاز تیره و تار شده است، به این معنی نیست که اصلا وجود ندارد. تحلیل طبیعت عشق بدین منظور است که فقدان عمومی آن را در این دوران کشف کنیم و شرایط اجتماعی را که مسئول و مسبب فقدان آن هستند مورد استفاده قرار دهیم. ایمان به امکان تحقق عشق به مسابه یک پدیده اجتماعی و نه یک پدیده استثنایی و فردی ایمانی منطقی است که بر اساس درک طبیعت انسان استوار است پایان